بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا الدور متى على اعدائهم اللهم سهل على جميع المشاهد وارحمنا برحمتك يا رحم رحمن الرحيم هست شد که استاد در مقدمه مباحث حصول عملیه مقدماتی رو بایان فرمودن مقدمه اولیشون یک است برای ابحاث حصول که هست شد ظاهرن شد مرادیشون از این تقسیم این باشه که اوحاس اصول در این پنج داره در این پنج پس خلاصه بیشن فکر میکنم نظر مبارکشونه این بوده که اصول بود این پنج فرس رو بنویسیم حسن این پنج قسمی که ایشون رو آوردن تدرین علم اصولی یا حتی کتاب های اصولی حسن کنم ظاهرنه که مرادشون این باشه به هر حال پیشون فرمودن فرموندن بعد از اولی که بحث ملازمات بود بر توضیحش گذاشت که بحث ملاحظات انظر فنی نمیشه یک بحث مستقلی باشه که ایشون تصور فرموندن یا استادشون مرحوم آیستوانی بعد فرمان ار قسم ثانی مایوسیل نایل حکم شرعی به تعبود اونجا قطع الویجدانی بود که اونجا قطع نیست تو اینجور مساد اعتبادی قسمانم داد و هاذا و علا نعنو این نوع اول مایکون البحث و هیه اشون فرمودن که موابصی است که بعد ثوربی است مثل قوارث الفاض اصطلاحاً در اصطلاح های ما موابص الفاض رو به اصطلاح رجال جلد اول مثلا که عادت هم به صورت 4 پنج بحثه حالا با اختلافی که آیون دارن در کیفیت تقسیم بندی بحث ها و جلو و بحث ها بحث عوامر هست نواهی هست این که بندی مثلا فرض فصل در کتاب مثل معالمونی ها عوامر و نواهی یک فصل دو بخش شده بحش عوامر و بحش نه. در کتاب های دیگر نه یک فصل عوامر یک فصل نواهی بحث مفهوم منطوع هست در بعضی از کتاب باز این بحث مفهوم منطوع جدا هتاب شده یعنی آمدن اون رو جدا کرد بحث محکوم منطوع رو به اسطلاح معروف جدا جدا داره هم نه بحث مفهوم منطوق رو تو همون بحث عوامل و نواهی بودن به هر حال بحث عوامل و نواهی و و مفهوم منطوق هم حالا علا اختلاف اما سه تا بحث دیگر رو که مجمل و مبین باشه جدا بلا مطلق و محلیم آم و خاص و مطلب و محلیم سه بحثه حالا با اونا یادو بحث یا سب این مجموعه به تحبیر ایشان مبارس سغرمیات ظهوره استدارهنی تو فه ان ها نما ها عنه سغرم و نفس ظهور که البحث هم هم ظاهرون فروجوب هم دارد نه هی ظاهرون فرومه هم و از و عمل و اندل و حالا مرادشون از اغلازان آمه مردم فقط افراد سفیح و دیوان خارجه هم اغلایی من این که من یک درجه عالی باشه چون حجیه که در بحث عمومی است در کل مردم ها با هم همین هم صحبت ها هم میکنن احتیاج در به علماء و اغلافی ولای و ها که علم اصول به انتوهم اختصاص ها من قصد افرامو که مرحوم میرزا خومی قائلا به خودی اختصاصه رو جیب مناسب عفام و قد تر قد فی محله چیز خوب از ایشون بود بحث و درحال بحثی از تقدم در او همونی که قائل داره و درزاخه اختصاصیشون میگن اینکه چون مسلمه است ما بحث نمیکنیم. البته این یک مقداری ترجیحا بر خود ایشون در همین شاطیگی در درس من هست اونطوری که این آیه معشی هم نوشته از صفحه بحث اول مبحث اول حجیت زوائد 133 وارد شده ها اگر یاد مبارک الهی باشه ما در مبحث حجیت زن از کریم مرحوم صاحب رسائل 5 در بحث مرکب میشه که مشتبه هنیشتا زن رو گفتن خارجه یکیش حجیت زواهره یکیش حجیت قلعه عویز یکیش اجماع منبوله یکیشم شهرت فتفاییست یکیشم این ترکیب بود که اونجا گذشت ترجم بزیشون میفهمند که و عمل کبراف و مسلماتون اندلال علمان از که بعدم ایشون ظاهرم ولی علم اندلالله چه شده من در این میگرم ظاهرم متاثر به همین محیط خاصی که کتاب اصولی ما هست کتاب متعارک اصولی فرصمیز کفایی چون در کتاب کفایی همونطور که اون روز متعارک شدیم مباطست اصیبی مقدمات رو بود از کلم کتاب کفایی تنظیم بحث اصول رو در یک مقدمه هشت را مقصد و یک خاتمه قرار داده خاتمش هم در اشرا اون را مقصده تا آده و ترجیح هم یکی از مقاصد قرار داده خب محل محل مناقشه شد پس سرم نشد من در این کتاب مرهوم آیه شما اصول جدید داره اما اگر پس که اصول همون که شاگر دیدی شما آیه مرمومان اون زفر چهار تاشت کرده، مواسط الفاظ، مواسط مرازمات اقلیه، بعد امارات و حجاره، امارات و حجاره، بعد امصول در که پایه هشت تاشت کرده. اینجا پایوکوی میفهمنم. ظاهرش اینه که میخوان پنج رسمون. ظاهرش اینه که این. چون عبارتی اینشون در اینجا ساخنه ای اون وقت اسم دوم رو اینجوری قراردن بحث اثبات صغرا وقت تمام مبارس حلفاز رو اینجا بودن بحث حجیت ظهور هم گفتن مسلمه دیگه پس نمی فهم. خودشون بحث کردن سال من چیه مسلم هستیه بحثم کردن و ازم شد در همون که مبارس ایشون در مبارس ظهورات کافی نبود بحث های هم در حجیت ظهور هست و امروز داره ما شما دونیم چه میگرند که از با سنگین قرار می یابیم و بعضی هورمون تیگس دارن اون بحث زور داریه، بعضی زور اینی که ما رو ما همکار من قصد به ما رو امکانشی که از نورس که کلام فقط در حد گوینده و مخاطب قضیه در حد غیر یه نیست. این احساس ما رو ما نداره می‌دهد. امروز باید. پس اینی که بعضی رو ما خارج می‌کنه از اصول میدونی. به نظر من درست نیست. شرطش اون خودشونم بخشی دیگه همین صفحه سادسیار تر انجیم یشونم بخش اوله نوشتن. فکر میکنم مابازل اول هم این خوبی هم بخش دیگه این صفحه سادسیار تی که به صلاه. حال مابازل اول فی حجیت الزواهر بعد نوشته ولای اخوان حجیت زار موت سال مالی برد مازلی بخشیه. به نما علی غلی کلام برد. مگر دکتر ما فی فیلسفی مساله علم اصول، ان بحث سود جدی است. در آنها می‌نال اصول مسلمه. و این نمر واقع که ما با گفتن کردم، چطور می‌شکند و از یکی از جنبش؟ حال بعد ما توضیحات کافی و از کردیم در مباحثی که مربوط میشه به زخوران، اینی که این روز صبح را بحث چندان بحث در دست بکنیم، شندان بحث دریجی نیست. در حقیقت اصل حجی اصل ورز حقیقت ورز اصل اصلا در حقیقت مرحله بند دیگه اصل ورز واد چون در کتب و اصول من اصولی ما امام داریم من با حس ورز را تو مقدمه آوردن سیزده تا مقدمه که در کفایه هست مقدمه اولش در تعریف علم و رتفه علوم و نمکنیز علوم و این حرف هست مقدمه دومی در ورزه بعد یه همینجور مشترک است. اما لفظه مشترک از معنا ها مشترک. خب اینا معنای حرفی اینا مباحث بسیار لکیفی است در مباحث ظهورات و در مباحث الفاظ لیکن اینا رو توی مقدمه علم وصول بودن. و درست هم نیست فنی هم نیست. این نکته فنی درستی نداره. و راه درستی هم نرخنه. کلیه این مواس زهوران به انواح مختلفش و انهای مختلفش با دلیل جا قرار میگیره و اینی که من اصلاف بحث مشتب رو توی مقدمات بیارن و بحث عوامه رو توی مقاصد اصری بیارن چندان روشن نیست این اشکال آیه اسوانی هست البته فرقشون اینه که مشتب در بحث مشتب بحث از یک حیعت افرادی میشه در بحث عوامه بحث از یک حیرت ترکیبی میشه اونجا تصوری اینجا تصوری راسته این فرق هست لیکن خب این فرشا خیلی قابل هراش این یک و سانیه لازم بود که آن اصولی ها مواحث رو هم منسجم بکنن یک نواق بکنن مرتب بکنن مثلا چون در عربی حیات داره معانی هستن این بحث از معانی حیات چه هیئات افرادی، چه هیئات ترکیبی ناقص مثل جمله شرطی مثل شرط و شد و چه حیات ترکیبی تام مثل جمله شرطی و غیره اینا اگر منسجم مثلا بحث هیئات افرادی رو که مشتق تو مقدمات آورده بحث مثلا فرضون ترکیبی ناقص رو که وضع باشه مثلا توی بحث منطق مفهوم آورده بحث مسئله حیعت ترکیبی تام مثل افعال و رو توی عوامر و نواهی حالا بعضی عوامر ناهی رو یک پس قرار دارم بعض دو مقصد نظرین کفایی دو مقصد مقصد اول عوامر ثانی نواهی دو مقصد رو دارم اما در مصد معالم یکی بردارم خب به نظر ما میرکی این انسجام پیدا نکرده بحث رو مرتب نکردن در کفایی مثلا بحث معنی حرفی رو توی انچنان در کلمات معنا و توی مقدمات اورده معنای فعلی و اسمی معنای فعلی با یک منسجم جلی اورده که معنای فعلیش خب این منسجم نیست یک انسجام با در موارد الفاظ داده می‌شود صوغاتش کوایازش اصل ظهورش مواردی که مروض به وجع مواردی که مروض به استعمال به نظر مواردی که انسجام می‌کنند در ابحاث لفظی داده می‌شود بله ممکن است بگیم که اگر خواستیم تنظیم بکنیم اون که مربوط به کلیه وضع کلیه معانی حرفی معانی کلمات و مفردات این رو توی مباحث ظهورات و مباحث الفاظ در مقدماتش آکشیارییم در مقدمات علم مقدمات همون بحث اون که مربوط میشه به بحث هایی که تاثیرگذار در فقه مثل ظهور فعل در وجود این تو اصل, و اصل بحث بیاریم مثلا معنای حرفی رو تو مقدمه مثلا یه فصلی رو قرار بدیم برای الفاظ مباحث الفاظ و خاطر اینکه که در شریعت مقدس الان یکی از اون کار بسیار مهم در فقر عباس از دلالات و ظهورات کلام هست یه مباحثش مقدمه یه همون فصل قرار بدیم یه مباحثم اصلی اون فصل نفت معیار رو اینجوری قرار بدیم اون چی که راجع به کلیه بحث لغویی ایست این تو مقداماتویه اون چیزی که برمیگره به فقر و استظهار فقری اون تو اصل گیری حالا ممکنه که به اولیان تو اصل گیری خیلو مالا بود اما به همان کلیه به قموری که برمیگره به الفاظ و از حیثی که چون مختلفی در الفاظ هست چون اما من تو ما دو حیثیت داریم در الفاظ یکی فهم و عرفی. مثلا فرض فرسونه حتی در ف اگر پدر و بزرش گفت مثلا اگر مهمان در نان بخار با این محکوم برای شما عقل میشه ما کار نداریم به شریعت به قانون اصلا تو فهم و عروفی فهم متعارب و عروفی آیا این ازش در میان اصلا بگیم بله اگر یک عمر تکریمی باشه در میان اما اگر عمر اعتباری باشه در میان بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم در شاره هم شد عمر اعتباری پس در میان یعنی اون نحوه استدلال و کیفیت استدلال رو و کیفیت استظهار رو روشن بکنیم علایه حالا این که ما باید یک فصلی از اصول رو به مواقص الفاظ اختصاص شدیم این جایی بحث نیست دفت کردیم یک فصلی از اصول رو باید به مواقص الفاظ اختصار شدیم این جایی بحث نیست انم کلام در نکته دیگریه و اون نکته کیفیت تنظیم این بابه این فصله اصلا مباحث برس موارد استعمال موارد معنایی، معنایی حرفی معنی اسمی موارد حیات چون از تین لغت عربی حیات کرد حیات هم افسان دارد حیات حیات افرادی حیات ترکیبی حیات معنوی حیات معنوی تقدیر محقا و, و تقریب اصلا بگیم اگر ثابت شد تقدیر محقا و, و تقریب یکی دل هست این در لغت ثابت شد در عرف مثل یا که نر در, در عرف عربی ثابت شد توی نصوص فقهی هم ثابت میشه تو اونجا فرم چون اینجا اختصاص نداره یعنی ما یک زمینه عرفی یک زمینه لغوی رو درست میکنیم حقیقت این اعقاد ظهور که جهت این اعقاد ظهور رو درست میکنیم بعد از درست کردن اون مسائل یه بحثی هم میگذاریم به نظر ما که با سه قسم بشه عرف آم دو عرف قانونی سه عرف شریعت مقدسه حسنگاه عقادی در یکی میشن مندمج میشن چون ممکن است بگیم در عرف آم مثلا صاحب محمود سرموزه در عرف آم سیغه از در, در نمیکنه. اما وقتی اعتبار بین مولا و عفت شد میکنه این مولویت اقتضا میکنه وجوب اطاعت مولا اختضام او یک تصوری برنامه ایست اینها رو باید یکی تحلیل بکنیم و توضیح بدیم و هر حال اینی که ایشون در ما مبارث الفاظ میخواییم و مبارث الفاظی یک کنول محصفیه صغربی این مطلب ایشان ثابت نیست ما مبارث الفاظ میخواییم تو این مبارث الفاظ خیلی از مبارثی که آن عنوان مقدمه اصول آماده باید اونجا جاش اونجاست جاش تو مقدمه اصول نیست معنی داره ما مطالبی که را به الفاظ و زرغات الفاظ و مقدمه کل اصول قرار بزید. معنی داره. چه نکته داره؟ جای مناسبش همون فصلی است و به الفاظه. ما یه فصل خاصی رو باید برای الفاظ بگذاریم. جای مناسب اون بحثه یه اصولی در روشن شده فیجاش اونجاست؟ بله. حالا همه شو در متن فصل قرار داریم. یا دیگه اون قسمتی که به عرف آن قد برمیگرده این در مقدمه این پس اون چیزی که برمیگرده به عرف قانونی آن و به عرف قانونی خاصه یعنی شریعت مقدسه این اصل بشه. اصل بحثش اون مقداری که ما از ظهورات میخوایم استفاده بکنیم برای مسئله به قانونی. چون در اصول ما در اصولا در ظهورات دو مقام هست طور کلی یکی استظهاره یکم تحلیله ما چه بخواییم استظهار بکنیم چه تحلیل بکنیم هر دو مناسب باشه اون قانونی باید انجام بده یکی در اصوله بحث قانونیه پس بیایم مباسه الفاظ رو از این پراکندگی که الان در اصول داره در بیایمیم به یک چکل یک ترتیب قانون من دیورشی. و هر فردن نور سانی ما یکون البحث و پیه کبرویه ای احکام شرعی که الخبر و البحث انحجیت اجماع البنگول و البحث انحجیت شهره مرادشون شهرات فرطوائی است و من بحث انحجیت زنه این قدادی بنام بر کشم یعنی ما با عدلی انصداد ثابت بکنیم شارعه اینجور گفتی این کشف اما ما به انصداد به حکم عقله این در قسم میاد ایشون میان. که بهش میگن بنابر حکومت استراحه دارن که ندیجه انصداد کشفه یعنی ما بعد به چهار مقدمه انصداد یا پنجداش اصفاد میکنیم که کشف میکنیم شارعه زن نه حجد رد. یا حکومت یعنی عقل حکم میکنه و ها نه اسم قسمه خب این بحثیست که ما الان هم بشه امارات میگیم و حجت ایشون رو در رسم سادس بحث از امارات و حجت بکنیم یا به تبیر ایشون یکونالبحصفی کبروی هم به تبیر ایشون ای یکونالبحصفی همه حجیت شی و مراد ایشون از حجیت در اینجا کلمه حجیت عباره از اونیست که برای اثبات شی حکمشه مراد ایشون یا اسمش رو دهیم حجر در مقام کش یا در مقام اثبات نظر یا اسمش رو دهیم طرق اثبات یا اسمش رو دهیم طرق کشم اثبات بهتره یا به خواستی روش های اثبات و حکم این چه روشی رو ما چه راه رو راه های اثبات اثبات و حکم رو این رو یک بخش اصول قرار بدیم که استلاحا از کردیم در کلمات مرحوم آیه اسوانی چهارم قرار شده امارات و حجج ما بحثی رو از امارات و حجج انجام بریم این بحثی که ایشون فرمان این بحث خوبیه درست هم هست ما به هر حال بحثی از امارات داریم اما خب معلومه که اینها نکات مختلفی دارن مثلا اجماع منبول رو و جل اجماع رو درسته ما توی این فرسی میاریم اما یه تحصیلی میخواد چون اهل سنت حجت و اجواه خودش به نفس حجت میدونم. نه به عنوان کاش بیم. و انشاءالله ارزی میکنی که نزا تقسیم مرحومت خدم از, از این جهت روشن به نظر نمیاد. یعنی اصل تقسیم درسته. این نحوه برخورده. پس اینجا سه تا شد. حالا بسم رابه مایلا یوسنان الال حکم الواقعی. نه به قطع وجدانی را به تعبد شرعی بل یوب حسوفیان قوائد متکفله لبیان الاحکام ظاهری، فی فرض شک حکم واقعی چه وزیفهی داریم ما که شک به واقع داریم شارع مقدس بوده قطعیم شارع مقدس چه ای بر ما قرار داده این برسه شما اصول عملی شرعی فرضیم مثلا در شک بین اکثر و عقل گفته به اکثر بنابود در قرآه گفته بر قرآه بکن فرسوی. در شکی این که این ملک کسی از نه گفته ملک اوز قاعده ید بذار در شک در تکلیف قاعده برای از گفته تکلیف نداری در شک در یک با حالت سابقه فرموده همه حالت سابقه استسا استسایی که سابقه ایشون گبتستم ماها دهل قواعد بل اصول حملیت شرعیه ما اینا رو اسمه اصول حملیت شرعی میذاریم یک بحثیست در کلمات اصولین شیعه تنبیه از قرنی آزده هم دوازده هم به بعد در شده و اون که اسم سوم رو که حجج و امارات اسمش گذاشتیم این ها اسمش رو دلیل اشتهادی نصف داده شده این تقسیم هم به مردم وحید بهبانی یه وقتی گفت در افتی که حاله بکتهی داشتیم دنبال رسال وحید اون مقالی که دستم بود نگاه کردم پیدا نگردم خب بیشان منصوبه حالا شاید بعضی از کتباه حالا که تحقیل کرده باشم بهتر نورش باشم بنده که پیدا نکردم ورها به وحید بهبانی استعاد داده شده که مثل خبرواهی اجموع منگوی رو میگه دلیل اشتهادی مثل استثام و جراعت و احتیاط رو میگه دلیل فقاحتی این استلاحاً از زمان ایشان بحث شد تمام و قد یعب برای دلیل دال علاله حکم ظاهری دلیل فقاهتی حکم ظاهری مورد هم این اصول عملیه اما اونی که الان من تو ذهنمه یه خیلی به ذهن خدا اعتماد ندارم ظاهرنشون فرقه دهیم اصول شریعه و عقلی نگذیسته آه خوبی این در زید اصول شریعه و عقلی یعب برای دال علی حکم الواقعی به دلیل شادی خبر واحد رو اسم روشنده ای اشتادی، معروف حجت و اماراکه. از ایشون شده که اسمش عدله پس شمرت و اجمع منگول و خبر با اینها، اینا ادله اشتادی هست. و برایت رو با از و بعد تو مناسبی و نه عقل شده من چون خیلی نگیدم خودم عبارتی ایشان با میگن چون در تعریف فقه گفتن خبه علم به احکام شریعت فرعیه و ما در باب حجر و امارات علم نداریم خبر زنو را آمده علم که نداریم چون علم نداریم اما در باب وظیفه ظاهری علم پیدا میکنیم که وظیفه ظاهری ما اینه مثلا وزیف ظاهری ما برایت وظیفه ظاهری ما استثار پس چون به وظیفه ظاهری علم پیدا میکنیم به شونگن دلیل فراحتی اما در باقی خبرشون این من زنه به واقع داریم دقیق اشتهادیشون در تعریف اشتهاد گفتن استفراق و لبست لتحصیل رن به حکم شرعی لذا این دقیق بشن اشتهادی ایشون اینجور بعد نه نفرن از وحید من چون ارز کنم نیده به عبارت وحید و آیا واقعا همینطوره که ایشون فرمودن یا نه لذا فعلا به هر ظاهر به همین تعریف ایشان اکتفا میکنید بلکه مطلب این نیست این که اینجا اومده این خودش این درست نیست اشاعه در اصطلاح اهل سنت این نیست که ما الان خبر واحد این ما تو میری بگید میره میشه با ذکر کلمات اصول دین در اصطلاح اهل در, جا در, در جایی که ما یک کتم واقعی میدونیم و در مطلب دیگری عنوان دیگری حکم رو نمیدانیم نه اینکه نمیدانیم میدونیم نیست حکمی نیست فارسی من باز مثلا میخوام براتون ارزش بکنم فارسی 5 تا چراغ اینجا هست سه تا کلید یه کلید میذاریم 2 تا چراغ روشن میشه یک دیگه دو روشن. یکی دیگه میذاریم تا یکیش خاموشه این میزه روشن نمیشه خاموشه بذارید میکنه اون در حقیقت این این کار میکنه در باب یه حکم نیست من این کلید رو واسه بگم این دیگه مثلا که این تا ها اول روشن بشین یا دوز شورا دوم بشن پس حکم نیست چون حکمی نیست با اون حکم که هست ما خودمون یه حکمی در نمیاریم اشتغال در اصل اونها اینه اونها فرضشون اینه که حکم نیست من نمیفرمیشم شما تا رو فهمید اصل چون کلمات وحی دان نگیم احتساب نمیشه یک مثلا اشتباه اشتحال در احل احل سنت اساسش اینه مثلا آمودانی گفتن در قرآن کریم پنج را از احکام یا شارتا پنج از احکام به اصطلاح حدود آمده مثل سرقت و زنا اما حکم شراب نیامده وقتی بیامدن می گفتن این شراب را هم بسته شده بی یکی نه که از در میروه میگفت شراب را سیدون به قرص حقه قرص در قرآن آمده برست. اشتحال در قرصم شد استفراغ روز نه تحصیل رن. زن نیست در اینجا. این زن اینجا مرادشون از زن در اینجا به لحاظ حال مك... مشتهر چون مشتهر میدونه حکم نیست. فرضش اینه. این زنش به این لازه. خب شما چرا به زنا برس نکردی؟ چرا فرض رو مثلا به سرگر برس نکردی؟ چرا به همد محارب برس نکردی؟ شما میدونید شروع خم حکم حکم رو به حد محارب بسید مگردیم یه چرا ریست که روشن نمیشه بیهی که از این کرده مقال بسید شروع ده اینا میدونستن هم حکم محارب در برآن هست حکم قصد هست حکم سرقت هم هست. این زم مال اینه میگه من حساب کردم مثلا شروع خم با سرقت رابطه نداره. بله کسی ممکنه شراب بخوره زنا بکنه اما خیلی رابطه نداره اما با فرز غالبا رابطه داره چون آقای شراب بخوره بزدوانی بفهمشی میکنه پرچه داوستی بیشه اینه که از امیرمون نفل نوزا شرب سکر و اله سکر حلا و اله حلا, حلا افترا و حد دل فریه سمانون آمدن یک کسونداری و حد بقص دفت کرده چرا میگه زر چون میتونه حکم الله نیست خود ق این رو برداشتیم دیگه چسبونده خب اون یکی نچسبوندیم؟ گفت تناسباتش بیره اینه چه ذهن زن گذاشتن به این دا این ربطی به آقای خیال کردن این دلیل به اصطلاح به و این من المواضح انال و خصوص الواقعی به قرنه به زن فه اینو والدی قدیح سر و عمل این نیست که چون بعد در اصطلاح فقه شمدنی هست اینطور نیست کلمه فقاهت هم چه در قرآن آمده اینی که میگن فرق علم فالو را نخر من کل فورت من کل اتفقه في اینی که علم گرفتن چون میره یاد, یاد میگیره حکم یاد میگیره است پس اینی که گفتن فرق اول علم مراد اینه اشتهاد هم گفتن استراق الوصل تحصیل زنده له یعنی و نظام معطنت شدن که اگر مشهد استفلااق ووز کرد و بیه بک رسید عدهای زیادی شد. اینی که گفتن در اصطلاحات آمده تصویب و اشعری تصاد از و ص اول هستن هر ننفسده کهقال به تصیب می غ رو تختند. اون تو کلمات معامده خیلی چیزاتی که کتاب معامده این بر اثر عدم آشنایی با کلمات اونا این تصویب رو با عامه پاه نسبت دادن و به عد از ممنتظر نسبت داددن به عکس که در کتاب محمده. از زمان شیخ هرنسایی رو برورش به عامه باها که مشتهد و اشتهاد در اصطلاح اونایی هم و از و پیش ما اشتهاد پی ما بعد به عنوان یک منصب اجتماعیی در کلماتشون اگه دقیقت بکنن که می کم تا دقت کردن در کلمات اونها در حیقت مشتهد چون میخواد موارد خارجی رو هم حکمشه پیدا بکنه و این مواردی که جدید باش محترام میشه در روایات نیست، این رو تقریبا شبیه اشتهاد در استاداهونا شبیه ولی فقیر میشه ماست. ولی زن در بعضی از خودشون میشن یعطبه رو فیل اشتهاد انیکون فقید رو فیل موشهد انیکون فقید هم از موشهد کسی که متصدی میشه به احکام شریعت میتونه. ترده حوادث جامعه بیان میکنه فقیر این باید حقیح باشه یعنی این احکام اولیه اون مقداری که آمده روشن باشه برش بعد بتونه مسائل جدید رو به اونها خیاس بکنه به اونها ارجاع بده مثلا این چی که در کلمات آقای آمده؟ اونی که در صحبه اسلامی بوده ولذا من خیرم در کلمات وحیر نیدم خدا مراجعه نکردم و هر حال یک مدت این اصطلاح بودن هم خیلی استعمال نمیکنن به هر حال نخوندن دیگه عباراتشون در وقتی وقت آن بی که اساس نداده. خب, خب... خب کردن عوض شده اینا چیز دیگه فهمیدن. اینا اجتهاد همون کاری که الان ما با روایا اسمش میشه اشعار گذاشتن. اونها یعنی اشکال نداره از اصطلاح خارجی اش رو خاص با درس ها <تصفيق> خواسته شاخدار بیستن پس مثلا آسوم به زمین میازنیم شما در موارس علمی خیلصا در رونه اعتباری مثلا دنیا به هم میخواده فرک به هم میخواد ملک به هم مقارف. نه حرفه وقتی اونا میخونم میخوندن به عقل چی بر ما پیدا ما یه جای دیگه رفتیم اونا چیز دیگه گفتم پس اون اشتهاد چیز دیگه بوده اون فباعتی چیزه که ای این دناشته شده خیلی درست نیست اما این قسم پنجم مایوب حسافی ان قوال متکفله رفعین الوزیف و دفعیلیه اقلا این فرمش با قسم چهارم بسیار خب من واقعش نمیدونم من به نسبتیم من نظر مبارکشون این بوده که اصول رو اینجوری بنویسیم مثلا اصول عملی عقلی رو جدا بکنیم از اصول عملی شرعی مثلا این دو دوتا بکنیم بحث چهارم اصول عملی شرعی بحث پنجم اصول عملیه عقلی. اینطور که ایشون نوشته فه این نر مکلب الالمی از سیدر حکم واقعی بلقت الوجدانی ولا به تعبود شرعی و عجز ایران معرفت حکم ظاهری که همون به اصلاح اصول عملی شرعی باشه تعین علیه رجوع الامایستقل به الام من براعت اول احتیاد اول تخییر این شبه اصلاح کرد که هیچ کلوم از این ها عقلی بی این معمیجه در ذهن ما هست نیست نه عقل عملیست نه عق ان بر توضیح شه برا م خب این با احکام معرفت من باب باب علم یک بحث اونا از خلنمون هست میگم انصدار قائل نبود اونی که اجتهاد آمد از شهده اینه که در روایت ابو موسیع عشقی از رسول علیه حاکم از شهده فله فلقو عشق از رسول نه اصابت نیست اشتهده اونها مراد اینه نه انصدار میدونن میدونستن نیست انصدار نیست میدونستن پیغمبر بکن نکرد اصابه بودن دیگه حاکم میاد برای خودش با ارجاعات پیدا میکنه میگم ذهنیت آقایون ما مگر همینطور بگه ما اصطلاح دیگه گذاشتیم ما زن رو که انسداد رو خود این حدود زن خیلی از سونی هم, هم. که او سوان در شعیه از زن معتبر خبر و غیر خبر و زوا همه رو زن نیم میدونن اینه بحث دیگریست این اصلا فقه قایل میسه همهش میشه زنی اینه اصطلاحات رو نمیشه با اصطلاحاتی که مردد و مبهمه پیدا بکنیم بعد ایشون فنا ها مسائل علم الاسور الان نهول اجمال بعد میهه وقت طرح ان البحث پیسراست در اقسامینه ها و یک قبول کلام قسم فلقسم خامس رابر که اصول عملی است و خامس اصول عملی است. از خواهیم که میشوندار که تا حالا که اصول عملی عقلی نداری این همه است، بله مثل احتیاط یا مثل براعت علاقونه یا مثل تخیر میشه عقلی تصور کرد لیکن خواهیم گفت که این عقلی نیست مگر مراد ایشان چون از لفظ استفاده نشه. خواهیم گفتی نوع جنبه احساسی و عاطفی در انسانه این از تصرفات قوه خیال در انسان مگر ایشون اینا جزو عقل گرفتن این تصرفات قوه خیاله ایشون عقل گرفتن. اینی که اگر من قطره خون خوندری که از این دو انا افتاد این ادعا منه واقع یکی افساده. من میام دو تا رو میبینم این دو تا دیدن صافتنه. این قسمت عقلی این سالیشون از رو مثلا تنجیز علم اجمالی اون نقطه تنجیز علم اجمالی همین نقطه است که یه جنبه ایست که انسان می‌بینه، در دو طرف می‌بینه، و روی زوابطی که خواهد آمد و توضیحات خواهد آمد هر سواریم اما براعت عقلی به این این, این معنا باشه که ما عقل حکم بکنه وقتی که ما علم به تکلیف نداریم تکلیف در مقام واقع نیست اینا نگفتن ظاهر حضرات اهل سنت در مقام واقع نیست بلکه ظاهر عبارت قدم های اصحاب ما مثل مرموم ابن ادریس و دیگران در مقام واقع نیست اینا میگن نه برایت میگیم عقل دیگه در مقام ظاهر نیست این هم خواهیم گفتی این شالات آلا تعالی. چیزی رو ما نداریم یعنی آلا اینشون بحث میشه یکی در ضوابط گفتن داریم یه گزا گفتن نداریم خایل گفت که اصلا این تقریب تقریب روشنی نیست اصلاً تقریبه روشنی مضافاً به اینکه مسائل عقلی بود برگرده به شرع یا برعکس از عقلی باشه یعنی الان رو عرض کردم ما وقتی وارد بحث ظهورات میشیم به باید اون زاویه قانونی رو نگاه بکنیم این توضیح روشن شد ما تو بحث ظهورات عرفی صرف بحثه میکنیم زاویه قانونی. اصول عملی اگر عقلی هم بود این باز درک به شر بگیم عقل اختزا کرده شاره هم همین امضا کرده یعنی اونی که ما الان تو بحث اصول فقه داریم اون چیز که مربوطه به شره حالا به تعبیر ایشان یا شره مستقیم گفته باشه مثل حدیث رب یا شره مستقیم نگفته عقل گفته میشه بازا شره فرقه میکنه حال، از نظر نکته فنی که مربوط به اصول میشه، فرقی بین این دو تا نمیکنه. این که ما یک بحث و اصول عملی شرعی قرار بدیم بحث و اصول عملیه عقلی قرار بدیم، هیچ نمیکنه. به هر حال این تقسیم بندی از شرم من واقعا چون عبارات ایشان ابهام داره، نمیدونمشون در نظرشون بوده که یک اصول اینجوری بنویسن. بحث اولش ملازمات عقلیه باشه، دوم سقریات اسات ظهور باشه. رمش حجز و امارات باشه چهارمش اصول عملیه لفظ شرقی باشه پنجمش هم اصول عملیه عقلی آیا نظر مبارکه که این بوده یا این شد معتقد ما که یک دور اصول رو گفتیم اصول کمان بحث و اصول اینه به هر حال ما افاده رحمه الله و اعلم به مقال من یه نمونه دیگه هم ارز در کلمات من رو مزفر آمده که ظاهره از معروای اصفهانی گرفته من اصول جدی اصفهانی خیلی وقتا چند ساله می‌خوام بگم نشد نه فرقی دل چه تقسیم بندی کرده با این تقسیم بندیشون ایشون یه مسئله شذه‌ای اصفهانیه آیا بقیهشم از ایشانه الان نسبت نمیدن اصلا که متوا ساعت اصول او که اول شروع شد به تدوین خود قد بفرمایید که ما الان ارزش میکنیم این به این صورت بود که اولین این که در دنیای اسلام زیر بنایه که قرار گرفت البته تسریح و توضیح داده نشود. اما در افتقاض فوقاها بود مسئله بسیار بسیار مهمش مسادر تشریح بود خود جفت مانه مسادر تشریق. مثلا کتاب سنت سنت پیغنبر حدود, دلال... حدود مثلا مقداری که کتاب متعرض شده مقداری که سنت بود بعد همچون احساس کنم فراغی وجود داره دو تا, دو تا مستر دیگه هم اضافه شد که از کنم اون اسلام بیشتر اسلامه زمان اومد یکی که در اون زمان بهش رعی میگفتن که بعدها قیاد شد یکی هم اجماع بود که یک نوع به مجلس مشورتی عمر داشت سی نفر بودن پونزهت از مهاجین اهل مکه 15 هم اهل مدینه نظر سنجی میکرد و اون نظر سنجی نهایی رو اعلام میکرد اینا مساده فشتی بود طبعا بعد ها مصادر دیگه هم اضافه شد که اهم از اون این در حقیقت قیاس به دو جور شد اون راءی دو جور شد یکیش قیاس شد یکی شد استصحاب ما به اعتقاد ما استصحاب اون قیاس فهم نمی‌کنه قیاس اینو مثل ریچارج از نظر قانونی مثل استصحاب الا ان به بین هما در قیاس دو موضوع بود یک موضوع حکم داشت یک موضوع حکم نداشت یک جامعه بین دو تا پیدا می‌کردن حکم رو برمی داشتن با اون موضوع دیگه نگه نداشت. این اسمش خیاس. در استثاب یک موضوع بود. دو تا نبود. دو تا حالت داشت. یک حالتش حکم داشت. یک حالتش نداشت. جامعه چی بود خود موضوع؟ این حالتی که نداشت اون حکم حالتی که داشت بهش دادن. درسته این اسم تو در استثاب. مثل اون مثال عرض که دارم ارز کردیم. خانم ایس که خون پس این خانم دوتا حالت داشتی که وجود دن که انقطاع دن با وجود دن گهر و وفیه ها اون حالت که انقطاع نداشت تقرد کنون حالت که انقطاع دن حکم نداشت اون حالت که وجود رو به انقطاع پس این درست نسی شد دیگه در قیاد از یک موضوع فرس از شراب انگوری دادن به شراب قرمایی جامعش اسکار بود در اینجا از یک حالت وجود زن دارم با حالت انقطاع دن جامعش هم خود خانم بود اون خانمی در وسط بود که لابود این بقای موضوعی هم جامع بود حالا این توضیحات چون سابقاً ارز کردیم می تکرار بکنم، پس سناوره و ولی ازا بعدها لکه از ارز کردن اصول یک مقرد زیادی ارحاظش از قرن اواخر قرن دوگم شد در اواخر اندوغم مسائل مثل حجج خبر اضافه شد لذات بعدها بعد از قرن سوم که اصول در میان اهل سنت تکلیف شد روح اصول رو دو بخش روح اصول شد دو گاز مصادر تشریع طرق اثبات یکی مصادر تشریع شد یکی طرق اثبات یعنی موارد زوادرن یک رو طرق اثبات این انصافش اینطور شد خلاصه یه اصول دو تا شد یکی مسادر فشت در کتاب های متاخترشیه مثلا این کفایه چون با فصل جداگانه به نام فشتی نداریم من در کلمات اصلا دیگه رفت می کنم اصلا مسادر فشتی بود تقدر کرد چرا یکی از این مسادر فشتی استصال و اشباد بود چون از این اصول عملیه که نیشونه اسم اون که بر میگرده به شباط و حکمی به اسطلاحاون فقط استثاب اصالت تاره هیچیه که از این اصول عملیه لفظیه شرقیه یا عقلیه به بر نمیگرده به اثبات و حکم به عنوانه چرا؟ اثبات و حکم به عنوان مجبور الحال چرا به این عنوان شد؟ اما اثبات و حکم به عنوان مثلا حرمت رد، نجازت تاره یا عنوان معیق این منحتر بود به استثاب و اصالت و تاره همونطور استثار هم که آی خوبی قبول ناشتن پس آتها هم یه اشتاری که بر از این پیدا خدمت این راجع به این مسئله تا که خدمتون هرز کردم پس اصل اصول شد دوتا البته یک قسمتی یه قسمت الفاظ چون نیاز داشته استثارات و عرفی روش تحکیل بیشتری شد و اینقدر این دیگه زیاده روی شد حتی مثلا بحثایی که مغلی باب اول به معنی باب و فاب و باب و سمه یعنی هم موردن تو اصول ولی هم در اصول ما اینه هست گرد توی ارده از این کتب علامه هم هست موادی علامه در کتب علامه بعض از این مباحث لقضی خیلی ریز هم در اونجا پیدا میشه. بحث اصول عملی هم پیش نیا جدا نبود چون حکم واقعی میدنست لکن در بین اصحاب ما آمد من بانان حکم واقعی بعدها چون اخباری ها هم کردن و اصولی های بردی ما مثل مرمون وقید بهبانی و دیگران کاملنه حکم ظاهری لذا تدریجن اگر ما بخواییم چون وقت کمه یک بحثی رو بگیم که مجموعه این مسادری که الان ما در میان اهل سنت داریم و شیعه و زیدیه وقتی نگاه میکنیم در تنظیم و اوحاس اصولی میشه پنج نوع تقسیمش کرد حضرت در بعضی از خط همین به پنج نوع نیست چهار نوع، سه نوعه, نوعه. لیکن میشه تنظیم کرد بگیم که طبق این تنظیم تمام موازیس اصولی که اهل سنت و اصطلاح در اینجا مطرح کردن آمده اول بحث اول اینو ما نداریم مبحث اول درباره باره حقیقت حکم اعتبارات قانونی حکم شرعی و بعد ترابط اونا با اون بحثه که هست کنید آرخویی سنجا ملازم ها داریم یک معنای بحث کلی حقیقت اعتباس و حقیقت احکام اگر از احکام مولویه فارغ بین اینها احکام ارشادی غیره اینا توان تو فصل اول گفته بشه فصل دوم مسادر تشریف که این اصلا کلن آقای خوی نه باردن اصلا یواشوش تو فقر اصولشی از در نفتی مباحث ایک مربوض کساب تو معالم هست مربوط به سنت مربوط به اجماع مربوط به اجماع احل مدینه به صد و زرایه مرگو به که یک مقدار شما سابقا متعرض شدید. این اصفیف رو داشتیم مسادر کشتید. که اصلا توی این تقریب بلیگاه خوی اصلا نهاره. قسم سوم به اصطلاح موانس الفاظ قرار میگیره. موانس الفاظ چونم از کتاب اصلاح از سنت این قسم ثبت هم بشه بهتره. که الان توضیح موانس الفاظ در اینکه یا مقدمه میخواد دو مقدمه و کن. ظهورات و یک اده از مباحث هم میشه هم تو بحث اول باشه مثل دیروز ارزش کرده مثلا مباحث مقدمه واجب هم میشه از زاویه لفظی بهش نگاه کرد اجتماع نهی از زاویه لفظی هم از زاویه حیرت و حکم مباحث احکام و مباحث قانونی که خاصی لاونجا هست مبحث چهارم هم مبحث طرق اثبات بشه که به اصطلاحون دلیل اشاری باشه مبحث پنجم کلیه اصول عملیه حب این تقسیل پنجگانه هست وقت مقدمه هم میخواده این اصول مقدمش هم دو بخش اساسی بشه یکی آشنایی افراد با اصول قانونگذاری در شرایع دیگه مثلا آیا مسیحیت اصولی دارن سنیا دارن مثلا یهودیت دارن مثلا چین داره ژاپن داره کشاره جدید غربی فلان آیا اینها چه اصولی برای خیلی این که یه خوب برای پیچی دست و نما دوبارم تاریخ علم اصول در اسلام راهایی هایی که رفتن روش که رفتن که اصولی خبر از اینکه که وارد بحث اصول بشه با خود دنیای اصول نه من باید وضع و معنی هفته روزه نه مقدمون که مقدمه علم نیست مقدمه علم یه آشنایی که کلی چارچوب کلی از تاریخ اصول کارهای که اصولی این کردن ایشیدن اختلاف اتجاه کیور بعضی از مسائل جا جا شده. این هم تو مقدمه خاطرش هم و ااشتتحری ح خوبه خاطر میشن تو اشتشار تغذیه بشه یا اشترا تریب تو تو رو به تا آرزم که قدما باید در زیل هر کدومش بشه، در طرق رو تعارضش تا با خودشه در کتاب و سنت تا با خودشه، در اصول عملیا تا آارز زی خودشه. تا آرززم هر کدوم در زیل باب خودش مطرح بشه. پس صنابراین با این تریی که ما کردیم البته من شد میخوام اصور. مثلا پس یه بحث را به احکام و حقیقت و در ایده از سطح و سنت آمده از این کرده. کردن لیکن ما الان وقتی هم بررسی کنیم از یک زبایی دیشتری دارشه بکنم پس اصول شد پنج خص و این تنظیم کتاب هم از هم تنظیم علم هم تنظیم کتاب بحث اولش ما یک جایلا حقیقت و حب و حفظام و حب و روابطی که کام با هم دارن توابط هست این تمام اینا توی این. که مباحث قانونیز کار به لفظ هم نداره. حیرت قانون و مباحث به اصطلاح این جهته. چون تا این جهت روشن نشه اصول این کار روشن نمیشه. بخش دوم مسادر تشریعه که ای این ببود به اصول اسلامیه. به اصول به طور کلیه. اون بحث اول شما در قوانین قربی هم میتونیم مفرحه کنیم. بحث دوم اسلامی. بحث سوم مباحث الفاظی که این ریش های و عرفی داره را که در این حال هم باز نکات دینی داره و قانونی داره بحث چهارم طرق اثبات که مثل خبر واحد یا اجماع منقول به فقه شیعه و بقیه راهایی که گفته شده و لوازمش که بحث تعرض باشه زیر بحثش باشه بحث پنجم کلیه اصول عملیه البته اصول عملیه او تفکر اذهی از اهل سنت جزء درس 3 اینو با در اول اثبات میگم که اینا جزء قسم پنجمه این یک بحث است. به هر حال البته اینی که مثلا این حسیانیت هم خودش بحث میشه که کسی بگه این تو قسم 4 عملی اصول عملیه قسم 4 میادن ادم اصول عملی ما اصول عملی اصلا در بین فقه ما طرف دیگه رسما بعد از اخباری ها جدا شد یک اشاره قوی اخباریا کردن که اصول عملی کار خراب میگه شما می ما شما ما برای عجیل می کنون حکم ندادیم. این همه روایده که احکام در سمان مهدیش رو حکم ندادیم. شما بود چی جردیم برای عجیل می کنم؟ لذاب نمیتون حکم ظاهری نداریم. این چون ظاهر و واقعی رو شد. و یک نهایت خاتمه یه در اشتحال و تقریح. به ذهن ما اونی که با مسادر و اصولی احل. این پنج قصد اجمالا در مجموعه کتب شیعه و سنی و زهیدی و دیگران که اصول نوشتن آمده مجموعاً آمده لکن الان به شما بگم یک کتاب که این درست پنج خیلس نوشته الان توضیح نیست. اما اجمالاً آمده این راهی رو که ما رفتیم کاری کردیم که مجموعه میراثهای های اصولی اسلامی رو مشخص کردیم هم موادسش مشخصه، هم شکل بندی کتاب اون هیکل کتاب هم روشن شد با این ترتیب فقیه میتونه در احکام و در استنباط احکام وارد بشه و مؤثر بشه صلی الله علیه و محمد و مولای الطیب